معمولا افراد از شنیدن فیلم های سینمایی لذت جدیدی میبرند و با دیدن اون کاملا متفاوته بشنوید رادیو فیلم امروز رو پرسه در مه از همین حالا تا یک ساعت و 17 دقیقه دیگه رادیو فیلم عرسه در مه نویسنده و کارگردان بهرام توکلی بازیگران لیلا حاتمی در نقش رویا شهاب حسینی در نقش امی احمد ساعتچیان در نقش کارگردان او و با حضور مسعود رایگان در نقش استاد حسامی آهنگساز حامد ثابت تحیی کننده جواد نوروز بگی دستی که انگار صاحبش روی تخت بیمارستان خوابیده انگشت اشارهی دست از بند دوم قطع شده و دست وصل به تجهیزات مراقبتی بیمارستان همین توی اتاق مراقبت ویژه بستری و بینی و دهانش وصل به تجهیزات بیمارستانی همه چی تموم شد؟ دقیقا لحظه ای که حس کردم دارم می میرم. تصویر چند تا شب پره با بالای رنگی همه یه رو دیگه هیچی چی یادم نمیاد نه گذشتهام نه آدمایی که باهاشون زندگی کردم نه حتی خطوط صورت خودم همه پاک شدن انگار تو یه لحظه تو کمتر از یه لحظه به جای همه خاطراتم همه حافظم. یه تصویر گنگ کمی ذهنمو پر کرده تصویر چند تا شپر که پشت بالاشون با رنگای زرد و قرمز و آبی با یه جور درخشش غیر طبیعی پوشیده شده رنگا موقع بال زدن شب ها با هم ترکیب میشن. رنگا تو هوا پخش میشن. این تصویر بدون اینکه خودم بخوام منو یاد بچگی میندزه دختر بچه‌ای تو کوچه ای ما بود که هر وقت میدیدنش همیشه چند تا از این شپراها دور و می‌چرخیدن. اگه اون بزرگ میشد میتونست کسی باشه که من میشناسمش. با همون نگاه، نگاه مبهوت و انگار تلس شدهش. تو ذهنم تصویر اون تو بزرگسالی سازم. من اسمش میذارم رویا. شنید شدن اسم رویا خانم جوونی با لباس ساده و گلبهی رنگ توی اتاق بزرگ نیمه تاریکی ظاهر میشه البته اتاق روی سن تئات فراحی شده و دختر نشسته پشت میز آرایش و مرد جوونی روزنامه به دست گوشه دیگه نشسته پشت یه میز دو نفره و مشغول مطالعه است برود اولین شخصیت به داستانی که مهمترین داستان زندگیمه من با ساختن این داستان دارم از مردن فرار می الان تو کمم یاد نیست چرا؟ یادم نیست چند وقته و هیچ چیز دیگه ی یا یادم نیست. تنها چیزی که میدونم اینه که هنوز مغزم زنده است و دوست ندارم با یه مغز خالی بمیرم. میخوام قبل از مردنم خاطراتی داشته باشم. آدمایی رو بشناسم. دوست دارم قبل از جدا شدن از این دستگاه ها زندگی کرده باشم. حتی یه زندگی فرضی. اون جوونی که روی صحنه تاز بوده، بورداره و, و دست‌هاشو دیگه شکمش گذشته. صدای باز شدن در زن جوون سرشو با شتاب به سمت در برمیگردیم سلام سلام کنگ اومدیم تو فکر بودید بیس شدیم یه دفعه را اگوار زن تو آره خوبه؟ آره باید بیشتر از اینا خودت باشید حتی به خاطر بچه زن شولهی رو روشن میکنه و کتری آب رو میذاره رو جاگ بازد زن نواری توی کاست زبخ میذاره و اونو روشن میکنه زن نشسته روی سندلی وسط سحنه تات رو به افق گیره شد نورهایی صحنه به جز نور موزعی روی زن خاموش میشه رویاب به تماشاگرها چشم رو. نور دوباره به صحنه برمیگرده. رویا جان اون رو برام میاری؟ رویا روی صندلیش بلند میشه و به پشت صحنه میره. دختر دستیار صحنه هوله رو به رویا میده و دستی به لباسهای نمایش رویا میکشه. رویا در آستانه ورود به صحنه نفسی میگیره و تمرکز میکنه تا نوبت ورودش به صحنه. صحنه خالی. من توی بیمارستان بستری اما انگار اتاق بیمارستان جایی خارج از دنیای واقعی ماست. به یاری در حال جابجایی چرت داروها توی راههای بیمارستان. در خلاف اون چیزی که همه فکر میکنم من می‌تونم صداها رو بشنوم. رادیوی یکی از پرستارا داره یه موسیقی آروم پخش می‌کنه. تنها چیز قابل تحمل دنیا تو وضعیت من. میتونم فرض کنم من نوازنده ی همین موسیقی هم که در از رادیو پخش میشه. دست های امین در حال نواختن پیانو است. به همراه نوازندگی امین، گروه بازیگران نمایشم مشغول تمرین و ورزش‌های تئاتری هستند. روی هم بین بازیگران مشغول تمرین بیان یکی که بدهی واسه تنه آخر اماده کنه سه دقیقا را رویه کنار پیانه و امین بری زمین میشه امین هم به آرانی کنار رویا میشه همه بازیگرها جای جایی رو انتخاب کردن و چشمشون رو برای تمرکز میبندن امین سعی میکنه چیزی به رویا بگه اما رویا هم با چشمهای بسته توی تمرکزه سونا آمی کابوس نادیا است یه دادم پشت سرم. داد میزنه آشیر تو ها. وقتی میواشونم میون بچه‌ی خوابگاه بعد با چوب مفتم میجونم چهجوری میبپنم تو بعد من ترس آمم خیلی تو واقعا دیدی سر خود در بود چند پشت می خواب می بینمقا بچه ها وقت پاین روی بلند میشه خ رویا با نگاهی شیفته از بین جمعیت به امین خیره شده و لبخندی به لب داره امین رویا در حال گشت زدن و پیادهرو تو یه مسیر تفریحی و کوپای هستن امین ظرفی تنقلات میخره و دوتای تستش می بعدش امین و رویا روی یه تخت تفریحی مشغول غذا خوردن و گپ زدن میشن و شد شده و رویا و امین از رستوران سنتی خارج میشن رویا تو دل شب رو به روی آتیش نشسته و از روی متن برای امین میخونه امین هم با دقت و توجه تمام خیره شده به روی امین؟ <ماندقال> <ماندقال> آه عمیق سیزیمنی از دل آتش می‌کشه بیرون و از ساقیمو مجبور سیزیمنی رو دست به دست کنم واسه که منیا و سیزیمنی درد داره اوه دیگه چه خبر دیگه حال که بعد از مدت‌ها فکر می‌کنم به نظرم میاد چقدر ن랄 انگیز می‌شه و چقدر درم برای اون ن랄 تنگ شده شاید هیچ وقت اون برای من واقعی نبود اما رنجی که از هم بردیم واقعی بود و به همون اندازه عشقی به هم داشتیم سکوت کردن در انزواب سر بردن و دوباره سکوت کردن رویو بالاخره پولهی در دست به سحنه برمیگرده و از طرف دیگه سحنه خارج میشه. پوله رو گوشه ای آویزون میکنه و روی چهار پایهی میشینه تا نوبت ورودش به سحنه بشه. رویا کلافه از انتظار توی حیات دانشگاه نشسته و امین شتابون سر میرسه اما بدون مکسی راهش ادامه میده و رویا هم به دنبالش میدونه. شد امین رو یاد دوندون از راپلا بالا رفت. چه فایده داره وقتی یه قدی امین مشغول نواختن پیانوی استادم بین سندلی های خالی کلاس نشسته و به نوازندگی امین گوش می‌دهد. دشتی بزرگ برپا شد و امین و رویا با لباس های سفید رنگ کنار هم نشستن و به مهمون ها خوش آمد میگن و میخند امین با دوستی مشغول گفت زدن درباره باره موسیقی و رویا هم در حالی که با یه مهمون گپ میزنه امین رو عاشقونه زیر نظر گرفته عرباته با لبخندی ده بله. خونه خالی شده از مهمونه و امین سعی میکنه از یه جایی شروع کنه به مرتب کردن خونه امین و رویا مشغول شستن زرفو هستن میکنی میگوی خوبه یا بره فروس هتیه صبح با قرار تمرین بذاشن از این بفر نمیشه دیگه اصلا اگه شانستو خوبه برمزنم هست کششانسی این که از کارم فکشون رو بکرم تو بایی زادن درست همه مایی کنیداره کیف میکنه یه چیزی میدونی که حالا آدمون میگره این من که من، من، چیز نگفتن آخر من میشه که یه چیزی میگی بعد نگی من که چیزی نگفتن بخاطه اگه تو عالم خودت هستی اینجوری نیست من حباسم به بر برگی چیزام هست من برگی چیزان نیستم امیم. روی همین همین همچنان به میشه همینجا وقتی همه چیز هنوز به هم نریخته مسیر داستان عوض کنم یا یکی از شخصیت رو از داستان حذف کنم پس ها شماره ایرو میدینه همو ترجیح میدم وقتی چند سال بعد میخوان دستگاه ها رو ازم جدا کنن کسی از نزدیکانم باشه که بهش تلفن کنن برای دادن رضایت دوست ندارم تو تنهایی تموم بشه زنگ تلفن خونه ی امین به صدا در میاد. بر نمیداره دوباره به این کیه. تموم جمع شده و داخل کارتون ریخته رفته شده پرستار داروها رو آماده میکنه و از پشت میز پذیرش خارج میشه. شه زنگ تلفن خونه خالی به صدا در میاد روی کتابی رو باز کنه دراست و به فکر فرو رفته امین رویا ها توی سلف دانشگاه مشغول غذا خوردن هستن که استاد به میز اونها نزدیک میشه. سلام اینگاه داری کسیم؟ پایش میکنم بفرم شما چیزی میل داریم من برتون بیارم چایی اگه برای خورتون نیم من حرف نیم با یه میز رو برای یا برمی چایی ترفیم کنم شما هم تو صرف دانشجو غذا مخوریم؟ امروز غذایی استادا ماهیه من از ماهی حالم به هم بخورم همین پوزخندی دو استادا حرفش میزونه ربطی خیلی به خاکی بودن و بهشی چیزا نداره نه اصلا دانشگاه تلاش می‌کردی اونطوری که فکر کردی بوده؟ من که اگه به خاطر خانومم که این تو همین دانشگاه نبود، داده دانشگاه بر کردم. این چیزا رو که جدی نمی‌گی. نه. شوخی تا یه بود داره. اینطور که شنیده بودم کسایی که بلدن کارو انجام بدن، انجامش می‌دادم. کسایی هم که بلد نیستم می‌دونن هم که بلد نیستن، تعریض می‌کنه. ولی فکر کنم کلامت درستی باشه. دا قابل از اینکه بیم دانشگاه همینجام که اینطور که میبینم استادمون میزاقن یه چیزی اون چیزایی که نوشته بودی همون که تو کنکور عملی دانشگاه اجزا کردیم خواستم اون یه اتروز بود برای کاری که دارم میبینم دوست دارم وقتی تمومش کردیم اشتم کار داره الان. خیلی بلن بلن چشمه الهامم خوشگیله چیزی درمه میاد من خوب وزرختم شکرد آره وزرختا بفرماین اصلا موشابه و چای روز کنکور عملی قطعه که براتون زدم فکر این از کسی دوزیدم نه حالا آمدین بپرسیم که از کی دوزیدم نه نرسین با ش رو صحنه بر میگرده و شام روی صحنه رو یکی یکی روشن میکنه همین هم بین تماشاگران گران نشست و با کمال دقت به صحنه نگاه میکنه رویا آخرین شام رو روشن میکنه نوشته های کتاب از روی چشم‌های رویا رد میشن یا روی آینه پلاتوی تمرین ایستاده و نوشته های توی دستشون می‌خونه. وقتی در فکر اک میکنم همه سال‌هایی که با هم بودیم مثل دوره های از رنج مطلق بیادم میاد. حالا که بعد از مدت‌ها به خودم فکر می‌کنم، اون از میاد چقدر مرال انگیزه و چقدر دارم برای اون ملال تنگ شده. کارگردان نمایش متحیر به گوشه خیره شده. روی هم جلوی آینه به فکر فرو رفته بس هم تماس پرستار با منزل امین و زنگ تلفون اما این بار رویا بین اساسیه نشسته و هیچ عملی نشون نمیده امین هم هنوز خوابیده روی تخت بیمارستان تراحیه گذشته تو ذهن شخصیتی که تو آینده است کار جالبی رویا تو آیندهی ای که وجود نداره داره به گذشتهی فکر میکنه که قرار بعدند وجود بیاد. روز تماس بیمارستان رو ندیده میگرفت اگه کسی تو اون اتاق با دقت منو رو نگاه میکرد اگه رویا گوشی رو بر نمی داشت. بالاخره رویا گوشی رو بر باشه فیاری هم دکتر امروز میاد هم نماینده وزارت خونه یه سری فرم رضایت‌نامه هم هست برای جدا کردن همسرتون از دستگاه ها که باید امضاشون بکنید. روی باز هم نگاهی کوتاهی به تلفن از جاش بلند بشه خونه رو ترک بکنه اگه یه تاکسی زرد رنگ از کجا رویا نگران دم در می در خونه امین قدم زمین از انتهای پوشی دارنا رو رویا همون میبینه و با دلخوری بر میگرده بخونه امینم وارد خونه میشه و در میبنده امین مشغول شام خوردن رویا گوشی رو ایستاده و به دیوار تکیه چرا گرمش نمیکنی رویاهی زرف سبزی و ماست میذاره رو میز قضا و کنن و این میشین امیز زیرچشمی نگاهش میکنه و رویاه هم سرشو میشرفنه و به امین نگاه میکنه میدونی چی ترس آدم درمیاره این که حالت از من بده باقی تو هم نمیگی چی دیگه اسب صفر چیزی نه میگم. در این چیزی نه ارز ندارم. چون ندارم دیگه. این نیست شما دارم, دارم سعی کنم می کنم. غرتت می‌کنم چون نمی‌تونم تمرکز کنم. کاری که باید انجام بدم نمی‌تونم تمرکز کنم چون صوت و پرتای مزخرف و میگیره. مزخرف و چایده نمیخوام آبا من باید بتونیم که میخوام بنویسم کاری که باید تموم کنم ورش کردم از دستم در رفته دیگه چیزی به این مخم نمیرسه آخی تو رول برم من بازی میکنی ماست سبزی میاری هفت رو رزن یه میخوی پیش بود تو اتاید ثابت کنی آدم بهتری از من هستی بلی اینجوری نیست رویا میز رو ترک میکنه و تنهایی تو اتاقش به موسیقی گوش میده باست هم انتظار رویا و ورود کلافو سریشته امین که داخل کوچه بود تکرار میشه امین و رویا با هم وارد خونه میشن ذهن آدم مدام چیزایی رو حذف میکنه و چیزایی رو اضافه میکنه من میتونم چیزای حذف شده رو سازی کنم شبیه که رویا دمه در نگران دیر اومدن من استاده قرار خبری به هم بده اصلا خبر بارداری شد اما حرف زدن با من قانعش میکنه که الان وقت دادن این خبر نیست شبه بخی دیر میکنی زنه میگنی من خبر بدی چی؟ فکر نمیکنی من این موقع شب توی کچه کار میکنم؟ این کشاری به حرف روی گوشش میکنم آره واقعا چی کار میکنم؟, میکنم. آره نست شاید کچه کاری داشتی میشه دیگه منو خاموشش کنی؟ خاموشه. همچه را از تو گوشه در نمیری وقتی با طرف میزن میخوام دوباره روشنش کن گوشت نمونه بگو بگو برم گوشت چرا اینطوری شد یامی؟ چه چطوری شد وقتی با طرف میزنم بجای دیگر نگاه میکن برای مشکلت مشکلت حرف زدن من یا نگانه کردن هر دو توش. اصلا نمیشه دیگه با تو حرف زد مثل دیگونه تمام نگاه میکنه رویا میره به اتاقش و کنار جواب آزمه و یه بسته کادایی میشین رویا کادوی جواب آزمایش رو با هم تو کشوی میزارایشش. رویا پشت در اتاقش با کشیدن نفس سری خودش رو کنترل میکنه و اتاق رو ترک باز هم من پشت میز غذا نشسته و رویا به دیوار تکیه داده. چرا گرمش نمی‌کنی؟ خودم. خودم امین بی حسله ذره زره رقمه روی با سبزی و ماست کنار امین میشینه پشت میز غذاخوری امین نگاهی کتاب رویان رویا بگه روی روی صحنه تاعت مشغول غذا خوردنه و امین از بین تماشاچی ها با نگاهی پرسشگر و جستجو کننده به این صحنه نگاه میکنه روی یه لیوان آب میخونه بازیگر مردم قابل گویا به کنار میز غذا میده و یه صندلی میشین و با عصبانیت مشغول غذا خوردن میشه در باز میشه و زنگوله های بالای در بسید و در میان گوی خونه رو ترک می سوار یه تاکسی زردنگ از خونه دور بشن دم غروب و تاکسی از خیابون ها و بزرگاه های شهر می زن. بوی از راه بله یه چهارزلی به آرمی بالا رویا برده راه روی بیمارستان میشه توی راه رو استاد روی یک صندلی نشسته و منتظر سلام سلام ازداد رویا با هم به طرف سیسیو میره رویا استاد از پشت شیشه به امین نگاه میکنن که بیهوش روی تخت مراقبت های ویژه خوابیده آقای دکتر عملشو یکم طول کشیده. معذرت خواستن. ولی شما باید یکم منتظر بمونید. چون برای مراحل قانونی رضایت نامه باید خود آقای دکتر تشریف داشته باشه. خیلی ندارم. روی داخل اتاق رفته و بالای سر امین نيسته. رویا با آرومی روی صندلی کنار تخت میشینه. قلمی مشغول نوشتن نوت روی کاغذ نوت‌نویسی امین سخت مشغول پیدا کردن نوت برای نوشتن روی کاغذ و توی ذهنش نوتها رو مرور میکنه اما اتفاقی که میخواد رخ نمیده و عصبانی کاغذ و قلم رو پرت میکنه روی میز امین غرقه در فکر و ناامید و سردرگم نشسته روی تختش صدای سوت گوش آزاری شنیده میشه و امین هم دستاش روی گوش هاش میذاره لحظه دست بر و شدت سوت اضافه میشه و امین در حال نباختنه. وقتی دست روی گوشش میذاره نباختن قطع شده و انگار برگشته به اتاق خوابش. حالا یه دست رو بر میدار و دست چپش هنوز روی گوششه. ناگران امین برکای نوت رو از کنال پیانو پخش زمین میکنه و در کلیت های پیانو رو میبنده. شده روی صفحه نطفح. باز بازنباختن پیانو رو ادامه مده تنها گوش امین دیده میشه و بقیه همه نامفهوم دیده میشن انگار امین خودش تنها غرق شدن در مصدره بگی نیست دو تا چای با چند قند و دو میشه دستی میاد و کناره لیوان یک بار مصرف چای آروم میگیره یه سوت یه نوت تکراری تو همه شیارای مغزم میپیچه. فکرای بی سر و تهو عذیت کننده مثل سوزانای ریز بافت مغزم رو تحریک میکنن احساس میکنم همه دارن به من نگاه میکنن انگار نگاهشون از پوست و گوشت و استخونم رد میشه می‌دارن نقص منو، فکراای ناقص و بی‌فایده منو قضاوت می‌کنن. از اینکه کسی قضاوتم کنه به هم میریزم دلم می‌خواد همین آدمایی رو خفه کنم. جوونی از میز کناری خیره شده به امین. امینم هم دستش رو کنار شقیقه‌اش می‌ذاره. کس دیگه‌ای هم از یه میز دیگه نگاهش شد دوخته به امین. تونم رویه رو تصور کنم تو اتاق گیریم بعد از رفتن من تحمل من کم کم براش سخت شده احتمالا به یکی دیگه پناه میبره یا آدم منطقی مثلا دکتر روانشناس من به یکی از حاضرین در رستوران حمله بیبره و درگیر میشه رویه نگران بودی میز نشسته و از این حال امین سرگردونه امین رو هل بیدن تا برگرده سر میز یکی از لیبان های چای ولو شده میگنیست من دیگه باید دارم در گیریم هموزیز ساعتایی من یه تایجا یه ساعتاییم توبتر باید الان با همیشه الان چه؟ تو فکر نمی کنی یادم خجالت میکشه؟ یه همی پری کله مردم که دارم به چی فکر میکنم به چی نگاه میکنم در چی حرف نزنم بایم این تو توهم داری در باره همه چیز در خودت. باششه خودم بر میگردمقول بادلخوری واردده تالار رو تئات میشه امین هم خرد شده شکست و, و در هم غر در افکارش بیرون سالمون تات روی سکوی نشست و پاهاشو گرفته تو دستش داشت رو یه بر روی آینه اتاق گیریم نشسته گوشی تلفن تو دستش با تلفن حرف میزنه هنوز بهش نگفتم من دو هفته از رو باز می این شک گرفتن کادو هم براش گرفتن بهش بگم خدا هم بریدم باریدم نه حالش خیلی بد داره مسانه باش نیست دیگه مطمئن نیست نمیخوام چیکار کنم خب من من دیگه نمی زنگ برم نه خودم زنگ و باز هم فکرهای مپم از درگیری داخل کافه روزهای تمرین و رویا پیر رو شکسته باینه با نگاه میکنه کارگردان نگاهی به رویا میدازه خوبی تو رویا هم برگه داخل دستش رو برنداز میکنه و برمیگرده به سمت کارگردان بخش نه رو برمیگرم میتونم تمرین بنده واسه بعد؟ رویا پلوتهای تمرین رو ترک میکنه رویا ا تو توی راه روی سالان قدم میزنه دستشو زیر شیر آب میگیره رویا اشكاش رو پاک میکنه آب بازه تو سنگ روشوی پای امین با ضربه زدن به آب ریت میگه پای <تصفيق> امین با تابلوی خاله شده در دست به آرومی به امین نزدیک میشه امین کنار جوب آب داخلی کچه ایستاده و با پا به آب جوب ضربه میزنه سلام سلام این چیه؟ هدیه چنجا های سوگی کلید ندارم بس اون چی دسته امین نگاهی به کلید تو دستش می دسته تو چی بهم بوده همه الان پیدنش به سمت در می و در رو باز می کنیم رویا به داخل خونه می رو امین هم بعد مکس کتایی دم در وارد خونه می شه باید لیوانی رو پر آب می کنه و یه قرص می خوره به چراقه خاموش روشن میکنه اما امین عملی از خودش نشون نمیده امین نگاهش به سمت تابلوی نقاشی که تازه رویه به خونه آورده رویه هم روی کناپ ولو شده قشنگه کس نمیشه چیابم هدیه داده؟ من نبارسیدم کی هدیه آورده نه پروسی منتظر منتظره بگم ذهن منو میخونی؟ روانشناسم شده ای؟ هرسه جب تو حفظم بازم از تو بخونم آه فقط فقط لازمه بتونی تمرین کنی یه جوری دروبایی صداد نلرزه تو باهمند که روانشناس روزی دو ساعت باید چی رفتنه؟ راجع من؟ دکتر منه دکتر تو نیست بخوام تا دور مشدد نده آره علی دروگ گفتی دروغ گفتی یکی از هماشه چیه تو با با روشانس دوزاری اینقدر جور شدی بس تابلو خرید دنبالی چی هست گرم خواهی بدونی رابطه با هم تو چه رو ازیه دقیقا فکر تموم تمام شده امین چماخه روشن میکنه چرخی تو اتاق میزنه و بعد به اتاق میرو از داخل در رو گفت میکنه کسی به کتاب های داخل کتابخونه خونه و بعد همه کتاب ها رو از کتابخونه خونه بیرون به سمت برگه های نوتش میره و کل اتاق رو به هم میریزه موحاشو با ماشین میتراشه اتاق به هم ریخته این ور اون ور میره بین وسایل ولو شده ای توی اتاق دراز میکشه روی که دردیفار اتاق شروع میکنه به نوشتن احساس میکنم تو تمام پیچ و خمای مغزم یه چیز داغ و لزج موج میزنه صدای صوت مدام تو گوشم تکرار میشه حس میکنم به جای خون تو رگای مغزم یه مایه سمی نیمه سفت پر شده دوست داشتم یه تیکه از مغزمو که منو به این حال انداخته بکشم بیرون صدای سود یه لحظه هم نمیشه این نشسته که صدای کوبیده شدن میخ به دیوار اونو از اتاق خارج میکنه روی تابلوی نقاشی خودشون میخوبه به دیوار هم همون موقعی که احساس میکنم پیداش کردن دارم بیشتر برمش تق تق تق چیه قضا تو خوردی یا نه حالا تق تق تق تق در دیوار سوی وقت بکنی تابلا میکن بایا با نزدیکه نزدیک امین که روی کاناپه نشسته میاد و کنارش میشینه حالا دیگه ساکت. ساکتم دیگه فرده نمکن ساکت باشه یا نباشی دیگه چیز سرم میسر راحت بر چه نبت خواهی تو وض راستم خودمو افسرده متاثر کردم بتونم کار کنم. ولی نمیتونم. نمیتونم تمرکز کنم. از بس سرصدا مزخرف رو اضافه تو این خونه است. حالت اصلا هرچی تا چی. آدمی میگه چرا اذیتم هم من رو خلا اذیتش کنم. امید. امین جا خواهر نکن دلت برم خاله که خواهرم به جمع حالی میدار برم چه خبر تو کارت خیلی خوبه خودت هم نمیدونی حالی یه مدت یه چیزی به سرد نمیرسه برمیسی نبایدن قدرد از خودت خسته بشی من از خسته میشم آرانده تابلوی روی دیوار نزدیک میشیم و انگار با این نزدیکی میتونیم به داخل تابلو وارد بشیم من دوست دم داره دروغ میگه داره نقش بازی میکنه مثل وقتی که رو صحنه است میتونه خودشو مظلوم جلوه بده تابلو پره این ناره اینجی دنگه که در افق با آبی آسمونی که شبیه دریا هم هست گره میخور و پرنده ها هم توی این تابلو مشغول پروازند. حالا همه روی یه سحن نباختن و تماشاشی هم به کارش نگاه بکنند. فلبته رویا هم بینه تماشاشی هم نشسته. هم سال رو ترک میکنن و امین هنوز پشت پیانوی خودش روی صحنه نشسته روی هم روی صندلی تشاشی ها هنوز نشسته امین دست به پیانو میکشه و اون نگاه و فکرش غرق کلیت های پیانو امین از پیانو جدا میشه ولی رویا هنوز بین صندلی های خالی از تماشاشی نشسته رویا امین نشستن توی توصسییه و مشغول برگشتن از سالن اجرا هست به ساانه هم نیده کار حالش خوب نبود قلبش اذیتش میکنه ریزنگ. فارسیت بیاد کله با شدن شارگرت سوبلیشو ببینه به اونها چرا اینو میگی همین دیگه تو داری آسمان بکنم ولی همینم انا بعدشون اونم منم مالشون باشه همینه بعضی بعضیا کون بعضی, بعضی کی مونده بود باید تو این دو نفر دیگه که منم هرچی براتون بزنم دست حالا هم داره برمیخوره از اون حالا اگه هی اینو به حال بهتر میشه نه ولی بهتر از زرقای تو من اگه چیزی میگم به خاطر اینه این که حال تو بهتر بشه بیش شاخه حال من با دروغای تو بهتر میشه که ایت اکرارشون میکنی ها داد نزنم سر من داد نزنم داد میزنم. داد میزنم چون انگار وقتی معمولی با درپی زنم هیچ نمیفهمی هیچ نمیفهمی تو خیلی بیجا میکنی سر من داد بکشی هر بخواستی من رو تو و سر کسی خالی کنی فقط فکر در ببینی خودت چته؟ که داری شیکر داد داری می‌زنه گیان می به حاشا تو بس امین دستش رو قرن میکنه تا بزنه تو صورت رویا اما خودداری میکنه و با آنج میکوبه به در تاکسی یارشیدو اصلا کلا نمی‌خوام شما را تو آقا به شما چه مرگ باو پا الوسی دیواره ندارم درست حرف بزن برو بابا تو دیورت از شواره چه غلطی کردی امین حمله می‌زنه به راننده تاکسی که دستش محکم می‌خوره تو صورت رویان ولی به درگیری با ادامه رویا از تاکی پیاده میشه و صحبه رو ترد دماغ رویا شروع میکنه به خون بزن خون و آب که جاری میشه توی سینک دستشون رویا به آرومی خونه صورت دماغشون میشون رویا حالا توی دستشونی ساون تاعت و رو به آینه گریه میکنه و عشقاشون میشه. باز روی خونه صورتش تو دستشویی خونش خونش اما این بار بدون گریه و قشم پنهان در چه هست کارش وستن خون صورت تمام میشه و رویا با لیوانی از چای میره به سکوی خونه که امین نجا نشسته چای کتاب شیلی به دست میگیره و مشغول مطالعه میشه چرا هر نمی ساعتی بالا چای چایی میاریم؟ اون ساعتی شایی دخواهی بردن. تو این ساعت پیش چایی نخوردی تو این چایی ها چی میریزی؟ دیگه با حسن دیگه چی میریزی؟ منزول چی؟ برمبخش برسه حساب دوی خواب نه یه موش این ساعت پیش تو تاکسی بودی. چه جیچه روی خوال فکر ای کن فکو؟ این یا فقط درم سدی سود میشتم اینجا چو ای که ارزی بیترین نیست قیار حالا فقط درم سدی سود و ممتادرست فی تو شوکو اینجا نمیتونی بفرم خبصده ای چیزی که میزدارم ازم نمیشتیم نمیدیم شاید جو مجوزت فقط دودم امتاد الان نمی ساید پیش تو خیابون تو تاکس سود هم امتاد الان نمی ساید پیش تو خیابون این جایی که چیزی من چرا خودت خود تو حضیعت نمیشه این کار رو یه مدت بید کنی چرا چرا میشه نسا که هم مهمه که من کار کنم نرکن سبیدیم بایی تو هست از جانمند چی میخوایی روی؟ روی بلند میشه از جاشو روی پله ها میشه همین لیوان چای رو بلند میکنه و تو دستش نگه میده و خیره میشه به اون یهو با فشار دست لیوان رو رویا از جا شتاب زده بلند میشه و میره سمت امین رویا تیکه های شکسته لیوان رو از دست امین میگیر و خورده های شیشه رو از دست خونال و دمین در میاره دماغه چی شده؟ رویا متعجب و نگران نگاهی به امین میدازه امین نگاهی به دست خونالودش میکنه و تو افکارش غرق میشه حس کردم از تیک شیشه هایی که تو گوشت دستم فرو رفتن خوشم میاد اصلا احساس درد نداشتن همون لحظه حس کردم دارم دیوونه میشه حس کردم تمام رگای مغزم دارن پاره میشن رنگای جادویی بالای شب برای ها همه مغزمو رو پشوندن رویا با باند و چست برای بستن زخم دست امین بردگرده بایی کنار تخت امین توی بیمارستان نشسته و امین هم هنوز وصله به تشریزات بزشیدی من واقعا برای چی رفتم تو کما اینطوری که داره پیش میره چند تا اتمال وجود داره یا از شدت به هم ریختگی عصبی مثلا تو خواب سکته کرده؟ یا نه وسط یه خیابون شلوغ حواسم پرت صدای سوت تو سرم شده و یه ماشین کوبیده یا دستشوی سالونتات رویا مشغول شستن عشق های روی سورت بلاخره رویا دستشوی رو پرکی رویا کنار کارگردان داخل پلوتوی تنبیل میشسته رویا کارگردان مشغول خوندن مثل نمایش هسته آره ولی بعض وقتا عوضا به هم رکده تره تو واقعا منو دوست داری؟ آره از کی؟ یالن نمیاد چی؟ یادت نمیاد؟ یه یا روز مشخص نبود وقتی فکر میکنی دلت برام تنگ میشه مباره بگید اگه واقعا فکر میکنی همه حواس هم به حرفات بعد صادقانا بگم اینجوری نیست چرا؟ چون چندیز دندون درد دارم وقتی حرف میزنم همه میخوره به دندونم تیر میکشه پسیه روز حرف نستم؟ باشه. چایی میکوری؟ رویو تنبال دیالوگ و اون نگاهی به مدنش رو نه این ندارم نه اینجا نیست چایی؟ آه. کارگردان گوشه این مشهور چای خوردن هستن من این الان دارم چی کار میکنم موقع گفتن این حرفا این چی؟ خب یعنی با دستای آویزون نشستم به صندلی. خودت چی جا رو بایدی؟ این خفه کنم آخه این دنبینش درد میکنه بعد اون کسی میگه عشق و... دونم کنشونی مسخره است روحی میره تا به گوشی همراهش که کفیفشه جواب بده خمصف بایی برمه خیلی من. که آنم حزیزم نمو بگونت خوبی؟ نه گذاشتم آره تو هم جیبه بیده بیده. آره, تو آره آره آره آره بخون امین وارد خونه میشه استاد حسامی نشسته روی کاناپه، روبروی رویا و زیر تابلوی نقاشی امین از دیدن استاد توی خونه متعجب میشه سلام سلام چکرون؟ مرد نیست خلیت خوب استاد نهی مرد نیست تحت درمانه خوبه تحت درمان خوبه تو خوبی مره چاید به پول غرزم بهش گفتی بازم خراب و بخش و بلاس آه آه برای همین اومدین درسته برای دیکنه که هم میکنم غرزیست اون سهری رو که میمیسیم این دزشت رو ازد میخونیم چیو میخونیم؟ موش خلخطی رو دردیبار میخونیم از شما پهیده حساب پول تو داری میرزی دور کله دیگه چیز یادشتر نید که به دردشان که بخوره حقا سوت ببینیم تو شایی درمانده چیزای خوبی من میسیم پس مخ پیش خریب میکنیم شما از کجا میدونید تو نخز من چی می‌گذره؟ مگر شما جز خودت کسی دیگه‌را می‌بینید؟ بگه سیگه هم بگ نک میکنی. امی. نه دیگه ما که از ایشون تا حالا جز این چیزی ندیدیم. یه آدم که از نظر حقوقی ناقصه، خودشو حبس میکنه ولی نه برای بشتن چون چیزایی که می‌گید سه مش سی و مشق بی‌خسی از بی ربطه. پس خودش حبس میکنه ولی این کس دغی بعدش میاد. نه استاد، درخوه تو گول میزنی. دوشین بغل پیانو قهرتم می‌ذاری. چی من... این نوت های مرده و احساسات پول سیدی چی از دلش در نمید بس خون بزرگیم بزرگیم مهم نیست ولی برای من مهمه فرق منه ایشو با که برای من مهمه که چی میخوام بنویسم من که دنبال نوشتم به قطع دوزی نیستم من که راز بی بیوقت رو از پرلود دفتر و اول دو بر نداشتم یا هوای محالوت از قطعه اصلی مرگز لیست اما ب شما دیدت برای من می‌سوزه. به زندگی من پول میذاری کف دست زندگی من. نه اصلا من نمی‌دونم کجا میرم. من چیزی رو می‌خوام بنویسم که تا حالا به گوشه کی رسید. من ماهمو میخوام بنویسم که هر لحظش تو سرم می این عین سربه‌دا ولی من مطمئنم شما اصلا درک نمی‌کنید من به چی دارم حرف شاید. شاید. اگه تو خودت پول می‌زنی. حالا تو این بهساز سال دست تونستی به پول خودت ماه رو نیستی کن یکم واقعه گرچه یک چیز واقعی دونی کرده نیست اون نبوگ نیستی یک جوری خلازاریه تو روکت ای که انوز ننوشتیش اسم گذاشتی آدم های درون خودت تغییر میکنی چرا دلیل نمیشه که فکر کنی که آدم خاصی هست یک چیز خاصی هست تو هم یکی از سیمس برخیه منتا یکم این از داره. خب میبینی چی منو اذیت میکنه داری نقطه زفه به روخم میگیش آقا آدم حقیقی هستی چه خیفت در کنم بسه برو جا ببینیم به هر کاری داری بکن خود میکنم دویا پا و امینه استاد رو ترک میکن و از اتاق خارج میشه استاد حسامی این سوار ماشینش تو راه برگشت بخونه هست حسامی تو فکره فکر اتاق امین همه کسایی که کار هنری میکنن دوست دارن اینجوری کشف بشن دوست دارن نبوغشون به شکل علامتی مخفی شده پشت دیوار اتاقشون یا تو گوشه های فراموش شده یه ذهنشون کشف بشه مثل یه چرقه مثل یه الهام روی یه دیوار سفید اتاق امین حالا پر شده از های درهم و موسیقی حسابی تو ماشین تو فکر اتفاقات چند لحظه پیش حسام اینگشتشو به آرومی روی نوشته روی دیوار میکشه بعد پشت پیانو میشینه حسامین وگه هم میکنه از ماشینش بیاده میشه حسامین میره به لحظه ها که افغاد منافق کنه که دیگه نمیده هیچ کاری بسمن نمی کنه. تو اتاقش قدم میزنه در دیباره رو خط خطیه میکنه یا تو خیابون میچرخه غذا درست نمیخواره خوابم من نیدم دو ساعت درست حسابی پشتر هم بخواه وز مالیش اصلا خوب نیست دکترش گفت توی چای ورس نمیخوره ولی میفرمه اونا را نمیخوره نمیدونم تو سر امین چی میگذره ولی مریض عادی نیست من دیگه نمیتونم این وضعه تحمل کنم همین مدت که از همین کنده هر یه روزی که تو این خونم برای من یه عذاب باستم شما باید حرف بزنید واضبش باشه. اصلا تو وضعیتی هست که میشه باشه حرف زن نه ولی منم تو به حضیتی نیستم که بتونم اوش ادامه بدم من نه از پیشش میگم نمیتونم خودمش بگم خواستم خواهش برم شما من چطور میتونم بهش بگم؟ گفتی که کارم دیگه نمیکنم. نه هم. خط خطیه که بودیوار کرد باز میشه امین وارد میشه سلام سلام. چطوریم؟ هد نیست خوب هستم اید هد نیست در رویه مشغوله بستنه چنده دونشتی امین وارد اتاق رویه همشه حالا خود نیست رویه درد میکنم مش سرین سرت کوفت مشتاونم سرین سرین سرین صدامو میشنوی نه تو تکرارشاتونو گفتی چرا نمیگی دکتر تو بستری کن هزار بهت گفتم برای بقیه رو عذاب میدی هرچی دلت خواستم شب با استادات گفتی اصلا بد نمینه که ندونی چی داری میگی تو وقتی کلماتت تو با دقیقت انتخاب میکنی واسه گند زدن به آدم تو سرت صدای سود نمیشنری هر با بقیه میکنی آدم اطراف میکنی هر دور و برو مشکل تو حل کن ولی دیگه رو من حساب نکن هستم چند وقت دیگه نمیتونم ساز بزن من کار خوش شده خب من دیگه رازمشون نداری. تو گفتی کجا مخبری؟ رویا برمیگرد و نگاهی مداوم و پر از پرسش به امین میندازه امین سوار بر مینی بوس توی جادهی جنگلی مشغول سفره با دستشو دستش رو باز میکنه زخم خوب شدن و تنها جاشون باقی مونده مینی بوس به راهش توی جاده جنگلی همین توی ساختمون خرابی بی سخت در رو پیکر قدم میزنه ساختمون توی زمین یه پر از درخت و علف همپاره ساختمون در امین با آرومی ساختمان خرابه رو به قصد نزدیک شدن به دریا تحریق کنه نگاه همین خیره شده به دریا و بعد هم گشتی میزنه به اطراف. لابلای کاهای خشکیده داس کوچیکی دیده میشه. امین داست رو برمی‌داره. دستش چپش رو روی تخت سنگی میذاره و داس رو بالا میبره. ها قطع میشن. امین داست رو فرود میاره روی انگشت اشارش و انگشت قطم میشه امین دست نالودش رو با دست دیگش گرفته و دستش رو فشار میده و از کنار دریا میگذر دریای پشت امین مواج و تقریبا طوفانیه خودشون رو به امین میرسونن و امین لحظه توی دریا زامی میزنه موجی به پاهای رویا میرسه و اونها رو خیس میکنه و رویا هم آروم و نگران نگاهی به دریا میکنه پشت رویا هم ساختمونی ویلایی دیده میشه. نه یه بساکی که به دست داره به سمت بیلا حرکت میکنه خودشون گفتی یه ساعت دیگه زنی بزنه همخارتون نربن خودشو ما بدی اگه ازش خبری شد هر خبری منتظر. رویا بینی چندین درخت قد شده کنار دریا قدم میزنه. حالا به آرومی توی تختش داخل ویلا به خواب رفته رویا روی تک سنگ های دریا نشسته و به دریا خیله شده تلفن داخل ویلا زنگ میخوره ماشین جیپی لابلای جاده جنگلی در حال عبوره تا به یه کلبه جنگلی میرسه روی از پیاده میشه و به سمت کلبه میره نزدیک در کلبه با نگاهی بغزالوت خیره میشه به امین که نشسته توی کلبه و با دست زخمی و فیشی شدهش پتویی رو دور خودش نگه داشته انگشت امین قطع شده نگاه بی هدف و مبخوت امین خیره شده به گوشه سخف کلبه وای به آرومی به داخل کلبه میره و خودشون میرسونه به امین و جنای پای امین میشینه باز هم جیب توی جاده جنگلی در حال گذره این بار علاوه بر رویا امین هم سوار بر جیب و ساگی شاخ و برگ درخت از روی صورتش میگذرن یه هدوش آب باز میشه و امین برگ آبتش و همهان میشه گوه دوست کن چای میریزه و یکیشو میزه جلوی دسته امین که یکیش با انگشت کمتر باندفیشی شده امین هم خیره شده به دریا سر بر و نگاهی به استکان چای میندازه و به آرومی دستاشو می دنبال استکان چای. روی منتظر برداشته شدن استکانه. انگشتان امین استکان رو لمس می و به آرومی اون می داره. روی لبان روی نقش می بنده. امی روی استکان می و گرمای چای رو حس می و نگاه به رویا می دازه. من نشسته روی صندلی راحتی خیره شده با آسمان باسم رویه از روی کتابی برای اهل میخونه من میتونستم ببینم حتی تو بهم جواب میگه اینجوری روزی چند ساعت با هم حرف میزد من تو واضح میشنید حتی گاهی صدات بیدارم میکرد درست مثل اینکه توی اتاق پیش من باشی بعدش یه مرتبه همه چیز محب شد دیگه نمیتونستم تصورت کنم امین پتو پیت شده کنار تک درختی لب ساحل ایستاده و محف تاموشای دریاست کمی دورتر کنار بیلا رویا روی, روی راحتی خودش خوابیده امین به سمت رویا میره و پتوی روی دوششون می میکشه روی رویا رویا روی سر امین رویا رو ترک میکنه و یا هم به آرومی چشم رو باز میکنه و به دریا نگاه میدازه نفهم دم که خوبم امین رویه کنده درخت بریده شده نزدیک دریا نشسته و با شاخه شکسته روی رویه ها رسم میکنه خیلی وقتی میخوام با طرف بزنم من الان حاملم رویه امین با به سمت در نگاه صفحه سونو گرافی بچه ای رو نشون میده امین باز همله به ساحل نشسته و به دریا نگاه میکنه با یه استکان چای تو دستش رویه امین با همله به دریا قدم میزنه تو من حرف زدی چند دقیقه پیش امین هنوزم هم توی کماست و وصله به تشریدات پزشکی من دارم بچه تر میشه صداهای تو سرم هم کم شدن حتی گایی تو سرم موسیقی میشنبم این یعنی اینکه که دارم خوب میشه اگه همین که همینطور خوب پیش بره پس من برای چی تو کما خسته کننده است که تو گذشته ای که هنوز توش زندهی مدام دنبال دلیل مرگ تو آینده باشی رویا از اتاق نگهداری امین خارج میشه و به پرستار میگه دکتر وارد وارده اتاق میشن و میرن بالای سر اون رویا مشغول پر کردن فرمی در بیمارستانه دکترها و پرستار هم مشغول قطع کردن دستگاه های امین هستند تردیدی توی رویا حس میشه و دائم تصویر امین که توی کما هست رو میبینه شد دور رو یا همه کنار آتیشی لبه دریا نشستم روی واکمانی به دست داره و رو به موسیقی محلی گوش میدن کنار مدن کارگرهای مدن چی هم نشستم و گپ میزنن دومفرم کنار هم آمادهی عکس گرفتن هستم من آوازای مدن ها رو ضبط می کردم. روزی چند ساعت به آشون بودم آدم عجییبی بودم حرفزن بهشون آروم من میکرد نمی فهمیدم چرا انقدر ساده از همه چی راضیه؟ هم. ازشون عکس می گرفتم. تو عکس لبخند می زدن با معدن رو خالی بیشنم چند کارگر داخل تونل در حال کلانی زدن هستن یه روز بعد از صدای ریزش از تونل اصلی اومد صدای انفجار و کارگرهایی که دوون دوون راگی ورودی تونل می شن. چند تا مدن چی هموزون تو بودن من دویدم قبل که فکر کنم قراره چی بشه. از دهانه ی تونل گرد و خاک محیبی بیرون میزنه امین آشفته نگران همراه کارگرها راهی تونل میشه تونل مثل اجده دور و خاک از دهان بیرون میده همین روی پارچهی زخمی و مجروح به بیرون تونل هم میشه حالا آرامش بر تونل حاکم شده کارگردان تا رو لیوان چای رو از رویا میخونم دوتایی توی سالن تمریم نشستن امروغمش رو عوض میکردم نرسیم خیلی نمید کارگردام سویچ رو به رویا فکرم کنید تو این وضعیت شما رفتم بیشتر رویا از جاش بلند شو و لیوانها رو از صندلی کناری بر و مندازه توی سطح زبا چه وضعیت نمیدونم تو چند ساله بعد از زمین هر وقت رفتی شما یا حرف اونجار زدی ریختی به هم هر وقت یادم اون روزا میافتم که تو شمال دنبال همین میگشتم خیلی عجیبه روزهای این ولی دلم نمیخواد یادم بره نمیتونم میترسم یادم بره هر کاری دارمت میکنه همون کارو رو ببنی روی اکیفشو برمیدار و از پلاتو خارج میشه نمیم درماشه به زنگ دارم دررگ همگهش به محل تمرین نگاه میندازه که حالا فقط دوتا صندلی خالی روشه رویه هم پشه در مکسی کوتاه میکنه و از در پلاتو فاصله میگیره روی از تالار تاتتر شهر خارج میشه و خودشو به ماشین میرسونه سوار پراید میشه و به راه میفته دفتر بچه این مشغول تابازی توی مهد کدک روی نگاهی به نقوشی های دفتر بچه که توی مهد کدکی میدازی دارن منو از دستگاه ها جدا میکنه کاش یه نفر توی این اتاق با دقت به صورت من نگاه کنه پلک همین خیلی آروم و محسوس تکون میخوره اسم کنم میتونم پلک همو حرکت بدن. اما دکتر به کارشون ادامه میدن و مشغول جدا کردن دستگاه ها هستن احساس میکنم تا چند لحظه دیگه حتی میتونم حرف بزنم فقط کافیه یه نفر به صورتم با دقت نگاه کنه جریان و هوارو رو پوستم حس میکنه. شاید قرار من واقعا برگردم صدای پرزدن شپرها دارن محف میشن او با دخترش سوار ماشین تو راه رفتم به شما پوستم دخترش روز دم به دریا و کنار دریا مشغول بازی است. با گیریم نمویش و لباس نمویش روی سحنی تات خیله شده به رو برم امین هم نشسته میون تماشا چیه. پرده به آرونی بسته میشه امین هم با رضایتمندی از کار رویا مشغول دست دادن هر کناه میره بازیگران برای ادای اعترام به لبه سن می امین جز اولین نفرات یکی بلند میشه و برای درود دست میزنه بازیگره چند قدمی به عقب میرن اما دوباره به آوانسه میانو و عدای احترام میکنن. رویا هم رضایت مندانه به تماشاچی ها چشم دوخته و خوشحال از تشکیخ ها و تعیید های تماشاگر. خوشت دستیار صحنه به رویا کمک میکنه تا شکنبندشو باز کنه و گیریم و دباسشو عباس کنه. رویا به اتاق گیریم میره. رویا به بیرون میره و با امین روبرون میشه. گروه دکور با وسایل خودشون فاصله بین امین و رویا میندازن رویا با اتاقی گیرین برمیگرده بیرون با تو کار دارم کیه؟ سلام سلام من امین نظری هستم در دوست آره بود بله بله بله بسته خیلی ممنون زحمت شد براتون آدرس میدادی من خودم میادم میگرفتم نه خواهی شکن خیلی ممنون چه کارتون خوب بود؟ خیلی ممنون نه جدا خیلی خوب بود ممنونم این میدرستم میاییم براتون بیلیت میذاشتن داوود تیچی به من گفت نه اشکال نداره واین نیست فقط میخواستم اگه زحمتی نیست برای فردا شب اگه هست بلید فردا شب همین کار ما رو باشه حتما چند پری من یه نفر. باشه حتما دم رو دار بگیم که مهمون رویا هستم چشم مهمون روی خان باشه مهمون رویا با تاگیرین بر میگرده و امین توی راه روی تالار تئاتر ناپدید میشو راژیو فیلم پرس در مه همینجا به پایان میرسه ممنونیم از شما شنوندگان خوب که تا انتهای این رادیو فیلم یا حاصل تلاش فرشاد آذرنیا سردبیلو تهیه کننده علی حاجی نوروزی صدا بردار و من آرمان قفاریان نویسنده و راوی بود ما را همراهی کردیم امیدواریم که تونسته باشیم رضایت شما را فراهم کنیم خیلی خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه رادیو فیلم از طریق سامانه پیامک رادیونمایش 301075 با ما در میون بذارید تا را رادیو فیلم دیگه خدای نجاته